همه ارس دیگه میان ترمی که مالی مدرسه نداشت و سشنبه ای که اش به بیمارستان نمی رفت سوار قطار لندن شدن تا به ملاقات جو و ایوان در خانهشان در همیر سمیس بروند حال جو ظاهرا خوب بود و ایوان هم مثل همان عکسی به نظر می که نورا در زندگی المپیکیش توی گوشی برادرش دیده بود جو و ایوان نخص بار توی باشگاه محلهشان در کلاس ورزش تلفیقی با همدیگر آشنا شدند. جو در این زندگی مهندس صدا بود و ایوان یا بهتر بود بگوید دکتر ایوان لنگفورد در بیمارستان سلطنتی مارزدن متخصص رادیولوژی بود. در نتیجه او و اش می توانستند راجب بیمارستان و این چیزها حسابی با هم حرف بزنند. جو و ایوان مالی را خیلی دوست داشتند. و در پاندا و کارهایی که می کرد از سوال هایی پرسیدند. جو هم با بروکلی و پاستا غذایی خوشمزه برایشان درست کرد که تعم سیر میداد بنورا به نورا گفت، مثل این که شهر پولیاز، گفتم یه بارم محلی محلیمون رو درست کنم. نورا یاد پدر ایتالیاییشان افتاد. نمیدانست وقتی فهمیده کارخانه ی لندن در واقع در بدفورده است چه حسی داشته؟ واقعا نامید شده یا صرفا تصمیم گرفته از شرایط موجود استفاده کند احتمالا در زندگی دیگری هم پدربزرگش واقعا به لندن رفته و همان روز اول اتوبوس دو طبقی در تقاطع پیکدلی سیرکس او را زیر گرفته و کشته جو و ایوان در آشپسخانهشان یشان قفسه‌ای پر از بطری نوشیدنی داشتند نورا هم متوجه شد یکی از بطری‌هایشان نوشیدنی شیراز کالیفرنیایی از تاکستان بوئناویستا بود نگاهی به بچه به بطری انداخت و با دیدن دو امضای چاپ شده زیر آن پوستش به مورمور افتاد. آلیسیا و ادواردو مارتینز. به این نتیجه رسید که ادواردو در این زندگی هم مثل آن زندگی شاد است و لبخند زد. یک لحظه به این فکر افتاد که آلیسیا چطور آدمی است. دست کم می دانست که تاکستان های زیبایی دارد. همانطور که نورا با بیهواسی به برچسب خیره شده بود، اش پرسید. خوبی؟ آره خوبم، فقط به نظرم اومد نوشیدنی خوبی باشه. ایوان گفت. من که عاشقشم، واقعا نوشیدنی خوبیه، بازش کنی. نورا گفت. خوب، فقط اگه از قبل برنامه داشتین یه بطری باز کنین. جو گفت. من که نیستم، این اواخیر یکم زیادی روی کردم، واسه همین دارم از الکل دوری می کنم. ایوان بوسهی روی گونه ی جو کاشت و گفت، میدونی که برداره چطوریه، یا همش یا هیچی. آره، خوبم میدونم. ایوان به همین زودی در بازکن را برداشته بود. امروز سر کار خیلی درد سر کشیدم، حتی اگه هم کسی پایه رو باشه، خودم ترهایی همهشو سر میکشم. اش گفت، من نورا گفت، من نه، یادش آمد آخرین بار که برادرش را در لابی هتل دید، اعتراف کرده بود که دایم الخمر بوده. یک کتاب مصور به مالی دادند و نورا کنار او روی مبلش است و برایش خواند. دا شب می درباره اخبار و موسیقی و فیلم ها حرف زدند، جو و ایوان از میخانی آخر جاده حسابی لذت برده بودند. اندکی بعد نورا با فرار از بحث های بی خطر و رفتن سر اصل مطلب با برادرش همه را قفل گیر کرد. هیچ وقت پیش که به خاطر کنارگیری از گروه موسیقی از دستم عصبانی بشی، از یه مار خیلی سال پیش آبجی از اون موقع اتفاقای زیادی افتاده. اما در هر صورت تو دوستشتی ستاری راک بشی. ایوان خندید و گفت. خوب الانم ستاره که ولی فقط واسه من همیشه حس میکنم ناامیدت کردم جو خب چنین حسی نکن البته منم حس میکنم تو رو ناامید کردم چون خیلی احمق بودم تا یه مدت خیلی بد باهات رفتار میکردم کلماتش مثل مرهمی بر زخمای گهنه نورا نشستند نورا نهایت تلاشش را کرد تا سرانجام انجام گفت اشکالی نداره، قبل از اینکه ایوان رو ببینم، دیدگاه خیلی این نسبت به سلامت ذهنی داشتم فکر میکردم حمله عصبی چیز خاصی نیست، میدونی، فکر میکردم با تلاش ذهنی میشه پسش زد اما بعد ایوان هم دچار حمله عصبی شد و فهمیدم چقدر چیز واقعی و مهمیه فقط به خاطر حمله های عصبیم نبود، احساس میکردم اشتباهه نمیدونم دونم، ولی خب بزار اینو بگم که به نظرم توی این زندگی خیلی شادتر هستی تا زندگی که توش نزدیک بود بگوید مردی، هنوز توی گروه موسیقی، برادرش لبخند زد و به ایوان نگاه کرد نورا شک داشت که حرفش را باور کرده باشد اما دیگر آنقدر در این زمینه تجربه داشت که قبول کند بعضی حقایق دیدنی نیستن چرخه. دیگه هفته هایی بعد نورا متوجه اتفاقی شگفتانگیز شد. کم کم بخشایی از زندگیش را یادش می آمد که اصلا تجربهشان نکرده بود. مثلا یک روز کسی که در زندگی اصلیش اصلا نمی با او تماس گرفت تا برای نهار همدیگر را ببینند. ظاهراً در دانشگاه با این دوست آشنا شده بود. وقتی هم اسم لارا روی صفحه گوشی پدیدار شد، لارا براین به ذهن نورا آمد و همچنین چهرش در ذهنش شکل گرفت، به طریقی هم میدانست که مو اسم شریک زندگی لاراست و بچهی به اسم آلدست دارند. بعد هم نرا با او ملاقات کرد و از درستی تمام این اطلاعات مطمئن شد. این حس آشناپنداری بیشتر و بیشتر برایش پیش می آمد. بله، مشخصاً هنوز هم سوتی هایی مثل وقتی که فراموش کرد، اش آسم دارد. گویا اش سعی می کرد با دویدن آسمش رو کنترل کند چند وقتی که آسم داری؟ از هفت سالگی؟ آهان آره البته فکر میکردم گفتی اگزما نورا حالت خوبه؟ آره خوبم بالا سر نهاری کم نوشیدنی خوردم واسه همین یادم رفته بود اما به مرور زمان این سوتی ها کمتر و کمتر شدند هر روز خاطرات مثل تکه ای از پازل در ذهنش جا می گرفتند و با اضافه شدن هر تکه، تشخیص اینکه که تکه های قایب چه شکلی هستند آسان تر می شود. در حالی که نورا در زندگیهای دیگرش همیشه به سختی تلاش میکرد سر نخهایی از زندگیاش به دست بیاورد و برای همین حس میکرد دارد نقش بازی میکند اما در این زندگی متوجه شد هرچقدر بیشتر خودش را در بطن ماجرا رها كند راحتتر حقایق را میفهمد نورا همچنین عاشق وقت گذراندن با مالی بود آشوب و حیاهوی لذت بخش و گرم و نرم اتاخ مالی ارتباط زیبایی که موقع قصه گفتن برای او بینشان ایجاد میشد، خواندن کتاب داستان جادوی و زیبایی ببری که برای مهمانی چای آمد و حتی همین که صرفاً با همدیگر در حیات بنشینند، همهشان برای نورا لذت بخش بودند. صبح شنبه مالی در حالی که سچرخش را پدال میزد و دور میشد گفت نگام کن مامانی مامانی نگاه کن داری نگاه میکنی خیلی خوبه مالی عالیه عالی پدال میزنی مامانی نگاه کن مامانی نگاه کن چه سرعتی آفرین مالی اما بعد جلوی سه چرخه از مسیر صاف حیات منحرف شد و در خاک نرم باغچه فرورفت. مالی اصل چرخه پایین افتاد و سرش محکم به سنگی کوچک کوبیده شد. نورا دوان دوان به طرفش رفت و او را بلند و نگاهش کرد. پیشانی مالی زخم شده بود. خون می‌آمد و مسلما درد داشت. اما حتی با اینکه چانه‌اش میلرزید، نمی‌خواست نشان بدهد که درد دارد. آهسته با صدایی به شکرندگی به چینی گفت: خوبم. خوبم. خوبم. خوبم. خوبم، خوبم هر بار که میگفت خوبم یک پله به گریه کردن نزدیکتر میشد اما بعد خودش را کنترل کرد و آرام شد با اینکه شبها کابوس خیرس میدید شجاعت و مقاومت خاصی در رفتارش داشت که نورا بی اختیار تحسینش میکرد و حتی از آن الهام میگرفت این دختر کوچک از وجود او آمده بود و به طریقی بخشی از او بود اگر مالی قدرتی نهفته داشت شاید خود نورا هم این قدرت را داشت. نورا او را در آغوش گرفت. اشکالی نداره عزیزم، دخترک شجاعم، اشکالی نداره. الان چه حسی داره قشنگم؟ خوبه. مثل همون تعطیلات. تعطیلات؟ مالی گفت، آلی دیگه مامانی. از اینکه دورا فراموش کرده بود ناراحت شد. سر سرسوره. آهان آره البته سرسوره رو میگی آره خنگ بازی درآوردم رو بردم مامانی خینگول ناگهان در دلش چیزی احساس کرد یک جور ترس که به اندازه همان ترس روبرو شدن با خرس قطبی واقعی می نمود ترس از حسی که در قلبش داشت عشق میتوانی در بهترین رستورانها غذا بخوری هر کار لذت بخشی را تجربه کنی در ساو پاائولو جلو بیست هزار نفر آهنگ بخوانی هزاران نفر تشویقت کنند به آن سر زمین سفر کنی میلیون ها نفر در اینترنت دنبالت کنند حتی در المپیک مدال ببری اما تمام اینها بدون عشق کوچکترین ترین ندارد وقتی نورا به زندگی اصلیش فکر میکرد. مشکل اساسی و بنیادینش همان چیزی که باعث شده بود کاملاً آسیب پذیر بشود کمبود عشق بود. در آن زندگی حتی برادرش هم او را دوست نداشت. بعد از مرگ ولفس دیگر هیچ کس را نداشت. نه او کسی را دوست داشت و نه کسی او را. خودش و زندگیش پوچ شده بودند. فقط این طرف و آن طرف می رفت و مثل مجسمهای از جنس اندوه و غم می کوشید وانمود کند مثل تمام انسانهای دیگر است. اما فقط در حدی که زنده بماند. اما آنجا درست همانجا توی حیاتی در کمبریج و زیر آسمان خاکستری قدرت هرا اهمیت دادن به دیگری و اهمیت داشتن برای او را حس گرد. بله. پدر و مادرش در این زندگی مرده اند اما مالی و عشق و جورا دارد تارهای در همتنیده ها نمیگذارد نورا سقوط کند با این حال نورا در دل میدانست که به زودی همه اینها به پایان خواهد رسید میدانست که با وجود تمام بی و نقصیش در دل این دنیای درستی و خوبی اشتباهی هست آن اشتباه را هم نمیشد درست کرد چون آن اشتباه در واقع همان درستی و خوبی شرایطش بود. همه چیز خوب بود، اما نورا هیچ کدام از اینها را به دست نیاورده بود. انگار که وسط فیلم وارد سینما شده است. کتاب را از کتابخانه گرفته بود، اما در حقیقت هیچ مالکیتی بر آن نداشت. انگار از پشت پنجرهی زندگی خودش را تماشا می کرد. کم کم احساس می کرد انسانی متقلب و دروغگوست. دوست داشت این زندگی زندگی خودش باشد، درست مثل زندگی واقعیش، اما نبود و نورا آرزو میکرد که این حقیقت را فراموش کند. واقعا آرزو داشت که چنین بشود. مامانی، مامانی داری گریه میکنی؟ نه مالی، نه، خوبم، مامان خوبه. انگار داری گریه میکنی؟ بیا بریم سر و صورتتو تمیز کنیم. اندکی بعد در حالی که مالی پازلی از حیوانات جنگل را کنار هم میچید، نورا روی مبل نشسته بود و سر سنگین و گرم افلاتون را نوازش میکرد که روی پایش قرار داشت. به مهره های زیبای چیده شده, شده شطرنج روی صندوخچه ماهونی خیره شده بود. فکری کم کم در سرش شکل گرفت، اما آن را پس زد. مدتی بعد دوباره همان فکر سراغش آمد. به محض اینکه به بخاره رسید، نورا به او گفت که میخواهد به دیدار دوستی قدیمی در بدفورد برود و چند ساعت بعد برمیگردد. جایی جز اینجا نورا به محض اینکه وارد مرکز سالمندان برگ بلود شد و حتی قبل از آنکه به میز پذیرش برسد پیرمرد عینکی فرتوت آشنایی را دید. پیرمرد در گیر مکالمه پر سر و صدا با یکی از پرستاران بود که به قیافش میخورد خسته باشد مثل آهی خسته در کالبدی انسانی پیرمرد گفت: واقعا دوست دارم برم توی باغ ببخشید ولی امروز دارن از باغ استفاده میکنن فقط میخوام روی نیمکت بشینم و روزنامه بخونم شاید اگه واسه کلاس باغبونی شرکت کرده بودین نمیخوام توی کلاس باغبونی شرکت کنم اصلا میخوام زنگ بزنم داوک از اولم اشتباه کردم اومدم اینجا نورا قبلا وقتی داروهای همسایه پیرش را برای او میبرد اسم پسرش داوک را شنیده بود ظاهرا پسرش میخواست او را به خانه سالمندان بفرستد اما آقای بنرژی اصرار داشت که در خانه خودش بماند هیچ جوری نمیشه من سرانجام اینجا بود که متوجه شد کسی خیره نگاهش میکند آقای بنرژی آقای بنرجی گیر و سردرگم به او خیره شد وله شما من نورام، مم. نوراسید، بعد چون دست از آن بود که بتواند درست فکر کند، حرفش را ادامه داد. همسایت اون هستم توی بلوار بنکرافت، آقای بنرجی سرتگان داد. فکر کنم اشتباه یه جانم، من سه ساله که اونجا زندگی نمی کنم، کاملا هم مطمئنم که تو همسایم نبودی؟ پرستار جوری سرش را به سمت آقای بانرژی کچ کرد که انگار به سگی سر در گم نگاه می کند. شاید یادتون رفته. نورا که متوجه اشتباهش شده بود سری گفت. نه راست میگن اشتباه کردم. بعضی وقتا حافظم اذیت میکنه. هیچ وقت توی اون خیابون زندگی نکردم. یه جای دیگه بود یا یه نفر دیگه. ببخشید. پرستار و آقای بنرژی دوباره برگشتند سراغ مکالمه خودشان و نورا یاد باغچه پر از گلهای انگشتانه و زنبق جلوی خانه آقای بنرژی افتاد. ایتونم کمکتون کنم؟ نورا به سمت متصدی میز پذیرش برگشت. مردی مو قرمز و عینکی با لحنی آرام و پوست ککمکی و نحجه ملایم اسکاتلندی. نورا اسمش را گفت و همچنین توضیح داد که پیش از آمدن تماس گرفته. در ابتدا مرد کمی گیج شده بود. گفتین پیغام گذاشتین؟ مرد در حالی که دنبال ایمیل او میگشت، آهنگی آرام را زیر لب زمزمه میکرد. آره، پیغام صوتی گذاشتم. کلی تلاش کردم با اپراتور صحبت کنم اما نشد. واسه همین دیگه پیغام گذاشتم، ایمیلم دادم. آها درسته که اینطور خب بتاسفم اومدین اعضای خانوادتون رو ببینین نورا گفت نه خانوادهشون نیستم فقط قبلا میشناختمشون البته ایشونم منو میشناسن اسمشون خانم علمه نورا سعی کرد اسم کامل خانم علم را یاد بیاورد ببخشید لویس علم اگه اسمم رو بهشون بگین میشناسن نورا نوراسید قبلا قبلا کتابدارمون بودن، توی مدرسه دین گفتم شاید دوست داشته باشن، یه سر بهشون بزنم مرد دست از نگاه کردن به مانیتور کامپیوترش برداشت و با تعجبی که تلاشی برای پنهان کردنش نمی کرد، به نورا خیره شد. نورا در ابتدا فکر کرد اشتباهی کرده یا دیلن آن شب در لکانتینا اشتباه برایش توضیح داده. یا شاید هم خانم علم در این زندگی سرنوشت متفاوتی دارد. البته نورا نمیدانست چطور با تصمیم خودش برای کار کردن در پناهگاه حیوانات می برای خانم علم در این زندگی سرنوشته متفاوتی رقم بزند. اما اصلا منطقی هم نبود چون نورا در هیچ کدام از این دو زندگی بعد از دوران مدرسه دیگر با زن کتابدار ارتباطی نداشت. نورا از متصدی پرسید چی شده؟ خیلی متاسفم که باید اینو بهتون بگم اما لوئیس علم دیگه اینجا نیست پس کجاست؟ خب راستش سه هفته پیش فوت کردن نورا در ابتدا فکر کرد حتما در اصنادشان اشتباهی پیش آمده مطمئنین؟ بله متاسفانه کاملا مطمئن نه نورا گفت واقعا نمیدانست باید چه بگوید یا اصلا چه حسی داشته باشد نگاهی به کیسه اش انداخت که در مسیر آمدن به اینجا آن را کنار خود گذاشته بود. کیسه ای که در یک دست مهره شطرنج بود. و نورا به قصد نشستن کنار خانم علم و بازی کردن با او آورده بودش. ببخشید نمی دونستم نمی آخه سالها می که ندیده بودمش خیلی ساله اما از یه نفر شنیدم که این... اینجا هستن متصدی گفت. خیلی متاسفم نه اشکالی نداره فقط میخواستم ازشون بابت اینکه اینقدر این, این قدر با هم مهربون بودن تشکر کنم مرد گفت در کمال آرامش فوت کردن توی خواب نرا لبخندی زد و معدبانه از میز فاصله گرفت خوبه ممنون ممنون که مراقبش بودین دیگه میرم خدا نگهدار